اسف بر, بر شما جمل آزادگان بهارم به دیدم مثل خزان منم سوریه متفن آن بلال اسيرم به چنگال ماست بيران اسيرم به چنگال ماست بيران بر شما جمل آزادگان بهارم به دیدم خزان منم سووری مه آن بلال اسیرم به چند گال مشتک اسیرم به چند گال مستک دررائ کجا دستلیشی مرد به زمان که باشد کنون هامی مؤمنان و جان که فت کردین اگر آید و ظالم گردت زبون دان دان بر شما جمله آزادگان بهارم به گردیده مثل خزان منم سوریه مدونه آن بلال حسیرم به چنگال مستقران حسیرم به چنگال مستقران کشن بیگ ناد و نادفل رو جوان زهر ای گشت خون و روان دمشق و حلب روز و شب در فغان خدا یا بده قدرتت را نشان بر شما جمله آزادگان بهارم به گردیده مثل خزان منم سوریه مدوله آن بللا اسیرم به چنگال مستک به مستک کاخ زلم را نباشد اگر چه حکومت کند چن سبا مکن زلمرهای ظالم مبا. کلکن کرده از سالمان را خدا, خدا. کلکن کرده از سالمان را خدا, خدا. ازسب بر شما جمله اززادگان بهاررم به گرددید ممثل خزان منم سووری من آن بلا اسیرم به چنگال مستقبران اسیرم به چنگال مستقبران از مستبد این سخن و توی که نمودی شهید تفل و اگر هست را در کفم در زمیر زفر آن و فر آنیان آن پند و در شما جمله گان بهاررم به گردید مثل خزان منم سوریه مد به آن بلال اسیرم به چنگال گال اسیرم به چندچ بدانید کنون تو دی مشرکیین بود از مثولونی همی آهنین بیا و باید جهان در دین زیان رار مرد و اخی مسلمین سفت کر شما جمله آزادگان بهارم به گردیده می خزان منم سوریه ملکانه آن بلال اسیرم به چند گالمو اسیرم به چند بنازم به آن مرسی قهرمان که او کرده هیجان همه مشرکان ميان روازه و ای کسیر به قرید او هم چشیر به ریده او شیر یان از بر شما جمله آزادگان بهارم به گردیده مثل خزان منم سوریه مجبنه انبلان حسیرم به چنگال مستقبران حسیرم به چنگال مستقبران, مستقبران. چوم رسیز من کر به هر جا دفاع نمودنده جانب سرش دوده تا بدانید که اسلام همی غالب هست چنین از تو قول رسول خدا اصف بر شما جمله آ. بهارم بگردید مثل خزان منم سوریه مجبنه آن اسیررا به چنگال گال مسترف بران اسیررا به چری گال بگو احمد از ملک آن صدان ندامهرب بهاری همین هست خدا خداداات باش حامی ممنان به شید مو به مثل و تمام جهان سبز بر شما جمله آادادگان بهار بهگردید مز خزان منم سووری مدانه آن بلا اسیررم به چندنج گال مست برانه یررا به چنج گال ما حس بر شما جمله آزادگان بهارم بگردید مثل خزان منم سوریه متفن آن بلال اسیرم به چنگال مستقبران اسیرم به چنگال مستقبران